این چه سخت صحبت باشه؟ اون اون مت چه اشا آدمه؟ درای امدادی هست. این فاصله برای این میکروفون بدن نفر باشه. درصت من در هستم. اونیدا برام همین ای که زده میشه که واسه میشه یه ذره سانا روشن میشه که من بتونم مخاطبا. درصت من دیگه. که در مدر ریزی صحبت. از من دیگه دوره گفتن مجبورم که روغاز و صبح برنامه. راستش من زمانی که دانش آموز بودم ریاضی خیلی مشکل داشتم. من سال دوم دبستان تو درسال یعزه نکنستان نمرو بیارم نمره زیبه ده گرفتم و از پاک ما استفاده کردم یه سر جلسه امتحان یه جمع داده میدن هشت به علاوه نه خی سهرخ شده بودم که چهجوری آدم که ده هنگاش دارن هشت رو با نه جمع میخوین و خب مجبور شدم از پاک ماده استفاده کردم ساله بالاتر هم همین وضعیت داشتم توی دبیرستان مثلا جبر بای دبیرستان نومدنین گرفتم هندسه نومده پندیمی گرفتم و با ریازی خیلی مشکل داشتم حالا ممکن بپرسیم که هاگه با مشکل داشتی چرا توی دبیرستان داشته ریاضی رفتی چرا قردم توی دانشگاه داشته ریازی بیشتر رو حسابه لعجبازی بود اون موقع مشابه رو چیزا وجود نداشت معمولا که مهمونی ها یه نفر رو مید به طور اتفاقی که من در گرفته و الیصایدره که مثلا من نصیحت کنه نصیحتش این بود که تو خیلی فکری هستی به دردی از نمیخوری علاوه بر این ریاضی رشته ادبیات بود مثلا رشته ادبیات انسانی این چیزا برای تو خیلی خوب نشی منم تلاش کردم به رشته‌ی ریاضی و, و سال اولی هم که کنکشن فعلا دانشگاه قبول نشدم من سال 68 دیگه گفتم دانشگاه قبول نشدم و سال 69 دیگه گفتم که من علاوه بر سر سالگردی نگار دیگه هر رشته‌ای درس میکنم حتی ریاضی. و بی ازیه آموزش شدم مشهدم شاگرد شدم. من تا دیپلم تهران بودم ولی رفتم مشهد و از سال 69 تا الان دیگه مشهد هستم و برنامه هستم. خیلی علاقه من شدم. خیلی درسمون شدم، متوجه شدم ریاضی شاخه‌های خیلی مختلفی داره که مثلا بعضیش ممکنه جذاب باشه، بعضیش نباشه، بعضیش هنوزم از متنفره هستم. ولی یه نظر به این فکر کردم که چه چیزی باعث شده بود که من از ریاضی متنفره باشم و ممکنه چه دیگه بشه این مشکل رو برطرم یه ایدهاری به ذهنم رسید مثلا اینکه که در ما مشکل داره امتحان گرفتن ما مشکل داره سیزده تا مشکلی امتحان پیده کردم این رادهی ای که توی امتحان گرفتنه مثلا این اینکه ما فردی باید به سوالا جواب بریم Uh, وا, اینکه قابلش این و اینکه قبلش باید درس آماده کنیم سر جلسه امتحان باید درس رو پاس چیزی این سر جلسه باید یاد بگیریم و اینطوری از اصلا اونجوری نیست که معلم chemistry سر کلاس حقوق میگیره به خاطر اینکه چیزی یاد بده یعنی کل حقوقی که معلم میگیره به خاطر اینکه چیزی داره یاد دو دو میده ولی سر جلسه امتحان اگر یه کسی به این خاطر یه چیز زیاد بده توجیحش میکنه تا میگه داری تقلل کردن در باشه که کار معلم چه چه میکنه؟ اون از محل ها گرفته که باید یاد بده آبا سر جسر که هم یاد بده را انجام بده و نگیشنی بنابراین این ایده ایجاد شد که یک مسابقه ای را تراحی کنم که در این مسابقه بچه ها به یه شیوه دیگه ای با ریاضی آشناه بشن اجازه داشته چند چیزی به هم دیگه یاد بدن اجازه داشتون چند سر جسر ایمتان از هم دیگه چیزی یاد بگیرم و اول اولی این مسابقه رو بفهم برگزار کنم رفتم یه مدرسه ای با مدیر مدرسه صحبت کردم تقریبا پنج دقیقه برش وقت گذاشتم تو نتیجه این مسابقه اینجوریه فلان خیلی جالبه ما مدرسه تونو به یه چیز شبیه یه شهر ریاضی تبدیل می‌کنیم الی آخر پنج دقیقه برای صحبت کردن با کی صحبت کنم تماشا ببینید نگاهی که گفتم مثلا هیچ چیزی ازش نفهمم جدا مسابقه رو برگزار کنم سال اولی که گرفتم توی مدرسه مصابره رو بزنم کنم کمتر از 20 نفر بودن که این مصابره شرکت کردن ایده من این بود که اگر که شما می‌خواید برید سفر کنید یه کشور جدید اول چیزی که می‌پرسین که واقعا پولشون چیه معمولا اول سوال همش این هستش پولتون رو چنج می‌کنین برای اینکه بتونین اونجا که, بتونی که رفتین مثلا از این خاصین چیز خرید کنین از پول اونجا استفاده کنیم. سوال بعدی که معمولا برای خانمای جذابی اینه این که بازار خریدش هستش و سوال بعدی ای که ایجاد میشه میشهید که اون یکی بازار خریدش کجا هست یا مثلا اون بازار خرید دیگش کجا هستش. با همین ایده میشه یه مسابقه ای کرد ما میریم توی مدارس و بهشون میگیم ما اینجا میخوایم تو شهر ریاضی درست کنیم. اول یه چیز های شبید پول بهشون مییم. یه چیزی مثل اسکناس کسی ریاضی داره داره یه جمله از اون ریاضی دا هستش و نوشه که چقدریه؟ مثلا سی دارید داری۵ هزاری، اینا رو توی مسابقه، اول مسابقه یه مقداری میدیم به هر تیم، به صورت تیمی هم شاید کرد میکنیم بعد دو دوستان میز میزاریم، اونا مثلا میشه مغازه سوال فروشی که میره ازش مثلا سوال بخره با اون که دارم میتونه برن سوال بخره واحد پولشون، مسئله ریاضیه در پایی یعنی دانش ریاضی <متحن> شکنه هرچی برد، اینا رو شکنه در ادامه همون پروژه راست <متحن> هستش. باید زخایر بکنه نیستش من با جبم کنم اینه باید مرسایشون که میشیم واحد پولشون دانش ریاضی هستش و جنسی که اونجا خرید میشه مساله ریاضی. حالا اینقدر این کار جزداغ انجام میشه بچه ها توی سالان ورزشی باید کفشه ورزشی بپوشن که همون مدد میدوان عرب میشن اونجا مغازه هست که ازش سآل بخرن بانک هستش که حساب بانکی دارن با موبایلشون یا تبلتشون به حسابشون وصل میشن موجودی میگیرن موجودی تیم های دیگه رو میبینن میتونن با همدیگه خرید و فروش کنن اگه سوالی رو خریدن نتونسن جواب بدم میتونم به یه تیم دیگه بفرشن اگه حل این سوالی رو بلد نیستن میتونن حلش رو از یه تیم دیگه یاد بگیرن حسابشون تغییر میشه وسط مسابقه تورم داره نمی دونم سوالی کالا داره همه این چیزایی که داخل دیگه معمولی رخ میده اینو مسابقه هستش و مسابقه رو روز اول با 20 نفر برگزار کردیم سال به سال پیدا پیدا کرد بچه ها خیلی علاقه من شدم با من تماس میکردم و می گفتم که مسابقه شهر و که برگزار میشه مول پیش و شهر و ریاضی بود مسابقه تیمی ریاض دانان جواب و دیدم اسم جاین براش انتفاب کردن شهر ریاضی و تا یازده سال از این جریان میره یعنی من یازده سال پیش بود که بیشتر از 11 سال پیش و 11 سال پیش دش بذم رسید و یازده سال پیش بر بار شروع کردن این علاوه بر این مسابقه خیلی مسابقه پرطرفداری نبود حداکثر شد 200 300 نفر که در مسای مشهد حداکثر 4 5 تا شرکت می‌کردند راست رو نه اون اتفاقی که افتاد این بود که این مؤسسه از ای آمریکا به اسم آموزش آلمانی یه برنامه آلمانی داره معلومه که دوره مدتش اینه که من 60 ساله که این برنامه رو اجرا کنم به طور اتفاقی افراد رو دعوت می‌گن ان که سفرشون رو می‌دن دو ماه مثلا اونجا درس‌های مختلف می‌برن بعداًشون این هستش که کاری کنن که بچه‌ها بیشتر به درس خوندن علاقه مند بشن هدف ایناست آموزش یعنی اینجوری که یکو کاملا انفرادی شاید انتخاب می‌کنن افراد ولی قسمی قطعی ندارم ولی به طور اجتماعی اقتصادی هم بودن که توی این پروژه وقتی که جوان بودن مثلا شرکت کرده مثلا خالد بوده نیست که سالگزی زمانی که جوون بوده تو این برنامه بهطور اتفابی بوده حال بعد چند سال گذشته رسور فرانسه شده رتم پس ما دعوت کردجا دو ماه اونجا بودم مدرس مختلف ماور من دانشگاه مختلف رفتیم و من این موقع برامجا چکر رفتم شرکت بوگر با شر بگر صحبت کردم با ج اینده دگاه سپور رفتم صحبت کردم با پستاه اونجا بهشون گفتم منگه همچین ایده دارم درم برکی مسابقه رو برگزار بر میکنم و بچه ها خیلی علاقه من نص هم مسابقه سوالی شد که معارفه جهانی به تکرد دانش آموزایی که توی این مسابقه شرکت کرده بودن دیگه به واسه بزرگ شده بودن خودشون به سری آزی خوندن بودن مثلا دکترای گرفتن پاساری دانشگاهی شدن مثلا پیارسورد بعد تقاضا داده که این مسابقه رو بر اونجا برگزار کنن یکی رفت ملزی یکی رفت هند ایتالیا یکی کانادا حاجی درخواست کردن رفتن رفتن که این مسابقه رو بر برگزار کنین و شکل جهانی به خودش بگیره بعد که من از اون سفر دو ماه برگشتم و توضیح دادم به این بعد فرنگستان می‌دهدید که به دفتری اصلا که ما چی کار کردیم اینو گفته بودم، باعث شد که توی ایرانم به این فکر کردن که نکنه این چیز جالبی باشه که باعث شده تا اونجا باید صرفت کردیم بل هماریت کردن هرگوان رو بی از کرد، بنیاد نفت بردم هماریت کرد، نفر رسی نفر و سال شش هزار نفر توش شرکت خب خیلی موفقیت بزرگیه برای شخص کوچیکی مثل من که هیچ پشکی پشت من نیستش هیچ بردن ذشنی ندارم و فقط این هستش که با بچه ها صحبتی فر میگم من از ریی بدم می اومده بنا به دلایلی و دوست دارم اوندللا برای شما تکرار نشه. امسال یه ذره من بیشتر شد شرایط چهار برنامه چرخ به من گفتن که بیا در مورد شهر ریاضی صحبت کن. و معروفتر شد شهر ریاضی رادیو با من صحبت کردن یه برنامه زنده گذاشتن رادیو رو مسی مردم بیشتر توجه میکنن بهش حالا چجوری هستش شاید مثلا که تفصیل ماشینگرس هم میتونم و دیتر کمتر نگاه میکنن زمان ها صحبت کردن اینا برست شد که امسال شهرهای های مختلف توی مثلیم برگذار همزمان در کشورهای دیگر هم برگزار میشه از هفته آخر من تا فیلند در خدمتتون بودم اصلا 14000 نفر که مسابقه شرکت کردم و حال ما در فیناله و فینال خیلی عظیمی هستش دوستان ارزشی برگزار میشه بالاتر از ارزشی که میشه می دونم قوت دوسته دوسیه رزومه هر توی هر ورده مسابقه شرکت میکنن و مسابقه خیلی خوبی است بچا خیلی خلاقیت به خرج میدن حالا دیگه فرصت ما 900 تا دهشون اول مسابقه میدیم و تیمی که الان قبل از ایت من توی فینالمون مقام حوال آورد و پنج و سه هزار تا دویس و بانک بود خیلی عجیبه یه نکاره تو دو ساعت هم هست مسابقه چه کارهایی میکنن که تو نوسته تا رو به دیویس و سه هزار رو کنن واقعا جالبه برای من جبگیر شدم به خاطر این مسئله بعد یه جایی با به اسم شهر رویازی درست کردیم با افکامان که دنشت حسان خورستان یه اصاف درمون نظام سکر طلابایی دارست و روزه چار سات کنسایت نزیر داره و این ایده رو دیگه داره سری کردم گسترش بدم من اونجا که توی آمیده در نوزه شدارش کردم پر صحبت کردم گفتم که یه اسمی برایش انتخاب کنم که بتونم مثلا انگلیسی ارائه بدم اونو به جای شهر اسم آیسلند رو انتخاب کردم آرسمتیک میشه حساب مثلا داری اول خب آخودم بودم که آیسلند شاید جدید باشه مثل مثلا دیزنی هم الاز کلمه شد باشه اسم آیسلند انتقال کردم حالا اینجا یه مکانی که هستش بچه‌ها من توش واقعا احساسی شهر رو دا دارم توش آزمش خیلی رویزی، کلیمیکه سینمای ریازی، کافه ریازی، چیزایی مختلف پس تو کافه ریازی میاد یک تک که به برای غمبه سفارش میتوند و یه سایل کنارش اگر تا غمبه سردم شده سایل بتونه جواب بده مثلا میتونه یک جریزه بگیرم نمیدونم که چقدر دیگه وقت داریم چهار دیگه دیگه وقت دیگه پس می کنم یه ایده که من هر سالال داره فضا مشکل داشتم یعنی همیشه وقتی مخص مصابقی برگزار کنیم که جا سالانی بگیریم کاری بکنیم اینا مشکل داشتیم به ما که نمشگاه بین مردی در مشرل به حرففته فضای پش همشه یه فضای مثلا حدود۱ده نچی میدادم فضا فضضا۱ده کوچیک بود که هیچ کاری نمیشد کرد.طر قی هم میتون که, که پایه این میزایی که ما داشتیم و میذاشتم بیرون که وقتی که مثلا مسئولین رد می کاشون پا پاشون کنه ب وقتی پا شون گیرگی کرد که چرا میزتون اینجا بازاشه می‌گوام و افرم هم می‌خواهد که باید هم این باشم طبیعتاً تاهمیدم که میزو نبه دادم از اون مرز بیشتر بذاره ولی خب این که گذاشتم اینه که شما باید گیر کنه و من باید هم بزنم بزنه وقتی شون بگواتم فضا هم نمیدم شما کمک می‌کنه براخره اثر کرد، امسال در آزر ماه ۹۴، من زرمانست که امسال سال تحصیلیه امسال در آزر ماه اومدن من صدا زرم گفتن که ما همیشه فزار که بهتون میدازیم دو آزر می یه ذره فزار بزرگتر میتونیم بگیم باشم که خوبه یه ذره بزرگتر بزرگ. میتونیم بزرگ. و از قبل نه نبقتن که چجوری موقع که به من دادن و من رفتم که بگیرم هزار دیلیس میتونی یعنی من گوشه سالن با بودم واقعا اعزار گرفته بدم که با این سالون چیکار میشه کرد و میگن که آدم وقتی که توی مشکلی میفته خلاویتش برمی میکنه بزنیم رسید تنها چیزی که میتونه یه سالون به این بزرگی رو پر کنه در فوتبال و یه فوتبال ریاضی تردار کردیم اسمش رو گذاشتیم ام مساولات رو تو که دروازه داره دروازه بند داره ارتفاع داره همجاره داره ضای وسط داره مخفی‌گردان داره منم پزشکی که زمینش یه دفتر دیجیاتیه که می‌تونم بشه کانکت میک کنم بهشون آفساید داره منم کارگذار داره تنتی داره همی چیز چیزا داره, داره، بچه‌ام انقدر هیجانی میشن در تمام مدت خیلی میشن میشه که درمم تو جای ازิบاد من شو زدنش سؤال طرح کردن جواب دادن سؤال حل کردن ما بالا رو کردیم یک جایی که آزمون برگذار کردیم این وقت برای دوستان بود چون با سیستم جدید اومده شام که بچه‌ها باید تو ترف سال به جای حل سال متداخل شد دانشگاه طریزی مشهد چون مشهد قرار بود که پای, پای اسلام در در در. این هم وجود داره که نماینده خارجی بیان بعد بهشون گفتم که مثلا فیفا چه جوری یه چیزی صعب فنی فیما فوتبال ریاضی باشه بعد از کشور دیگه دعوت کنیم که بیان تیم بدم و قرار شدی که در دوست میدم ما جام جهانی فوتبال ریاضی رو برگزار کنیم و حالا داریم مقدماتتی برگزار می کنیم همه اینا برگردی هم به من با ریاضی داشتم یعنی بهدلوی اینکه من زی بدم اینماجب بهدل اینکه حالا معملا بدم از چیزی که بعدش میاد شاید این هستش که ممکن و معلمانه پسنده نمیدونم شاید مثلا دی یه درس دوست داره من خیلی نمیدونم قبول برم استعداد وجود داشته باشه در این بین اصلا یکی استعداد شیمی داره یکی استعداد ریاضی داره فکر کنم نه به عرشت خوب نباشه کسی اینی خوب یه موضوعی رو پرزنت کنه خوب بد بده به بقیه ممکنه که بقیه هم خوششون بیاد در اصور علا رب که ریزی خیلی از آور هستش، ارموژی هم به من با فرنا هرزم میدین ندسته یز این همیتونه فرار اینجا اوماده که نه منیش همیشه جوری هستش که این اتفاق و مثال هم اینه، بعدی با آدم صحبت میکنم که شما ریاضی دوست دارید میگنم این درست که در اینکه میگین که لازانی ها دوست دارید میگنم یا مثلا میگنم، یا تا اله فردی میگنم خوب چون نخورده نمیتونه که بفهم که دوست دار بیا آزمایش وب م نه اصلا دوست ندارم ریاضی هم ی همچین چیزی اگه با کسی صحبت کنیم که ریاضی دوست داری میگه نه و اگه بگیم که چرا شاید حداکثر که برش باقی مونده باشه مثلان محوج مشترک گرفتن دوره دبستان یا نمیدونم تناسب و دوست نداره و بطور کلی چون انو دوست نداره میگه که ریاضی رو دوست ندره به درد بدم. خیلی ممنوم که صحبتا